radio al -bors. iran's radio radio al -bors.

بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز.

ب ایسدیو را رادیو اللبورس، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوس زمان پخش برنامه های رادیو اللبورس، شنبه ها از ساعت 8 تا نیمه صبح و یک شنبه ها از ساعت 8 تا ده, ده صبح

Thank <music> you.

با سلام و سابه خیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز امروز شنبه هیچده همه شهری ماه 1385 خرشیدی برابر با نه سپتامبر 2006 میلادی تا ساعت دو سی دقیقه بامداد میزبان شما شنوندگان همیشه همراه رادیو البرز هستیم

پخش برنامه های رادیو الورز را به آگاهی شما عزیزان شنونده می رسانم شنبه ها از ساعت 8 تا 10 و سی دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد از کانال دو راژیو آهوس با فرکانس های 89.5 و 98.7 مگاهرتز موسیقی

شماره تلفن ما 695 9 تکرار میکنم کنم 6 آدرس الکترونیک ما رادیو اللبرز@ hotmail.com و سایت اینترنت ما ست دبلیو نقطه دیکو البته ایران ایفو یک کلمه هست.

برنامه امروز راژیو الورز و بنده مصطفى شکری به اتفاق همکارم خانم فیروزه تا ساعت ده و سی دقیقه بامده در خدمت شما هستیم خانم فیروزه مطالبی را از دکتر محمد اسلامی ندوشن تحت اناوین ما داریم به کجا می رویم و ایران را از یاد نبریم به سم حضورتان می رساند

آخرین خبرهای ایران و جهان همراه با گزارش های مربوطه به ایران را به آگاهی شما عزیزان خواهیم رسند. و بالاخره بنابرای تغاظه های شما شنوندگان گرامی رادیا البورز مجهدن دانشنام ایرانیکا از رادیا فرانسه را برای شما پخش میکنیم.

درود بس شمایی که دل به مهر ایران دارید البته مهر ورزان ایران در جهان کم نیستند با وجود اینکه 150 سال یک خط قرمز کشیدند که اگر از اینجا جلوتر رفتی جانت را باختی اما هستند کسانی که با قلم زبان فراتر رفته و نگفته ها را گفتند اگر ما خانده باشیم گرفته باشیم بعضی از این دوستاران در جامعه خارج ایران

شناخته تر و محبوب تر از داخل کشورمان هستند در صورتی که هنوز در ایران زندگی می کنند چون معنی فرهنگ و زیبایی را شناختند آنها می‌دانند که در خواهش زندگی کردن مانند درختی است که در گلدان تنگ به حیات خود ادامه می‌دهد با همه فشردگی تن به این زندگی داده ایم یکی از این کسانی که باید امروز بیشتر بشناسیم

دکتر محمد علی اسماعیلی ندوشن هستند ایشان استاد دانشگاه در ایران و از حال خانای ایشان خبری نداریم

برنامه امروز با نویشته های ایشان تقدیم همه شما عزیزان در سراسر جهان کرده تا بتوانیم قطری از خدمات ارزنده ایشان را در راه فرهنگ و مردم و شناخت زیبایی که آثار ایشان در خانه هر دوستار دلسوز ایران موجود است و با خواندن آن به معنی زیبایی پی برده حافظ فرهنگش می باشد.

صحبت‌های استادانی، پدرانه، دل ایشان در تاریخ ایران بی‌گونه‌ای مخصوصاً در دورانی نقش نامرئی را ایفا کرده است. نقش یک نامرئی عمیق شاید خودشان این را ندانند در دنیای بستی که ایشان با قلم و کاغذ همدم هستند. جا دارد از همه زحمات ایشان سپاسگزار باشیم.

اگرچه ما شاگردان سر کلاس ایشان حضور نداشتیم اما آرزومندی ایشان که شناخت فرهنگ و زیبایی می باشد تقدیم نسلها تا آنجایی که در طبان بوده است کرده ایم و خواهیم کرد و در مقابل ایشان و تمام دوستاران و دلسوزان ایران سر تعظیم فرود می و می و می که افسوس افسال این عزیزان در مملکت ما همیشه کم بودند

شان در نوشته هاشان نوشتند اشاره کتایی به آن داریم من گمان می که یکی از خطرهای بزرگی که روح و فکر نکسل کمومی را تهدید می کند خطر عدم مش... تشخیص زیبایی است می توان گفت در این دوره ما به نوعی بیماری زشت پرستی دوچار شده ایم ما مانند کشتی که به کوب کوه یخبر بخورد

بر تمدان فرهنگی برخورد کرده ایم و میارهای زیبایی ایران را از دست داده ایم اگر روزی تعلیم و تربیت جدی گرفته شود باید جز به برنامه درسی زیبایی هم تدریز شود به فرزندان این آب خاک آموخ که زیبایی چگونه است؟

به جای آنکه مثل گربه, و گربه نر به دنبال گربه مارده میدویم به دنبال مقام و پول باشیم بهتر از کمی به فکر احساس سر زندگی، آزادگی و فضیلت باشیم تاریخ 150 ساله اخیر ایران یکی از باورترین، عبرتنگیزترین و اندوهبارترین فصول تاریخ کشور ماست

هر کسی حق دارد در وطن خود بماند و از نیمت طبیعتی که برای هر جنبنده این رایگان است استفاده ببرد. تجربه چندین ساله نشان داده که کمک های خارجی تا کنون جز در موارد خیلی جزئی نتوانسته است باری از دوش ملتهای عقب مانده بردارد. ما امروز پیش از هر چیز نیازمنده اخلاق هستیم،

ما امروز پیش از هر چیز نیازمنده اخلاق هستیم برای همین در پی چاری اندیشی باید بود که شکوه و این قوم به زردی نگر آید هرگاه ملتی سلامت روح خود را از دست داد دیگر چه برایش می ماند وظیفه دیگری نیز به اخت دارد و آن ایفای رسالت معنوی اوست دموقرسی باید زمینه را برای رشد فضا الینیک فراهم کند

کسانی که کشتی این کشتی این سرزمین را ناخدایی کردند همه دانشمندان دانش نمایانی بودند پس چرا باید تقصیر را به گردن بی سوادان و مردم عادی افکند بیاییم از این آخرین ناجوانمردی بپریزیم و اعتراف کنیم که بار گناه بر دوش ماست ما که کور سواد آموختیم و بر حق و یا ناحق ورایغی به دست آورده ایم

بسیاری از ما فضل و معرفت، از فضل و معرفت بویی هم نبرده ایم، ما کمتر به خودمان می که کشوری است به نام ایران و در آن مردمی زندگی می کنند که در این آب و خاک حقی دارند. پس از 28 مرداد به این سو این احساس برای من بود که قوام ایران در معرض گسیختن است. لطمه بزرگی به اندیشه گروهی از جوانان ایران زدن به عنوان محصول روشنفکری و پیشرو به آنان فروختند،

تازه اگر روزی بر خداین با عمر از دفس رفته چه خواهند کرد و نخواهند گفت وای چه عمری که از ما تلف شد چه کسی فکر میکرد که دیوار برلین مانند خمیر فروری زد و در میدان سرخ مسکو موسکو میتینگ آزادی داده شود اینا همه از موجزی فرهنگ و آزادی است امروز به

در میفرستیم به همه آنانی که جان خود را دادند تا ایران برای ما بماند.

Kojoi kojoi ma shur hanin jo

ای قوم به حج رفته کجایید کجا <تصفح> <تصفح>

سرزمین اهوراییم ای سرزمین اجدادیم در کدومین روز تو را در آغوش خواهم گرفت و در کدومین روز خاک تو سجده خواهم کرد و در کدومین روز پرندگان مهاجر دوباره به دور دریاچه جمع خواهند شد و سرود آزادگی خواهند خوند

در افثانه ها آمده است که قرنوس مرغی است خوشرنگ و خوش آباز که منقار او سی سد و دارد و بر کوه بلندی در مقابل باد می و صدای عجیب از منقار او براید. گفتند که هزار سال عمر کند چون سال هزار به سر آید و عمرش به آخر رسد هیزام فراوانی جمع می کند و بر

بالای آن می نشیند و سرود آغاز می کند مست کردد و بالو بر می زند بدانگونه که آتشی از بال او میجهد و در هیزو می و در آتش خود می سوزد و از خاک سرش تخمی حادث کردد و از آن قغنوس دیگری به وجود آید گفتند که او جفت ندارد و موسیقی را از او گرفتند

بین افثانه قغنوز و سرگزشت ایران تشاویی می تواندید. ایران نیز چون آن مرغ شگفتی بی همتا بارها در آتش خود سوخته است و باز از خاک سرخیش ساده شده. دوران ما یکی از های بارور است. زایندگی هرچی با درد همراه باشد با سعادت بخش شورنگیز می تواند بود. در این چند سال همواره من این احساس را داشتم،

که ایران بار دیگر یکی از دورانهای زایندگی در مرک را می و در میان درد می شکفت گرفتاری های روزانه، دلمشخولی ها و بودزدگی های قرن مانه از آن است که بسیاری از ما به عمق ماجرایی که در روی ایران است توجه کنیم چون کسی هستیم که به واقع که هنسالی در چله زمستان پای می نهد و آن را خشک

خاموش برهنه گرانبار از قربت و وحشتی مربوز میبیند بیان که نجوای پنهانی حیات، لوله خاموش، جرمهای رویده و سفز شونده را در شکم کنده های پیر و در نهاد شاخه های خوشد دریابد در زندگی ملت ها نیز دوران های زایندگی هست و این دوران ها بوده که تمدن را به پایه کنونی رسانده است

دوران ما یکی از دورانهای بارور و زایندگی است در روزگار که گویی ایران در ابری از فراموشی پیشیده است اگر کاری از دست ما بر نمی اگر کاری از دست ما بر نمی آید خوب است بکوشیم تا فکر و غم او را در دل خود زنده نگه داریم و اعتقاد به زایندگی را

را در سینه خود نپژمرانیم ما از این حیث چون بیماران تیاک خورده هستیم که به هر صورتی باید بیدار بمانیم چون اگر بیدار نمانیم ممکن است هرگز بیدار نشویم ممکن است هرگز بیدار نشویم.

you you i you you mashooq hamnast you i you mashooq to hams

قوم به هج رفته کجایید کجا

Roman Tamara Dirgha Marghi Chaman Le chemin je souffane Chaman

نامم قمارو تو ای رقمارزی شمانو شمانتو سفانا شاپو شکریش

کجا میریم؟ شما میدونید؟ آیا ما با جهان امروز همراو و همدوش هستیم؟ نه؟ عقب موندیم؟ عجله کنید میترسیم در راه بمونیم؟ از پا بیفتیم؟ در این راهی که من عقب موندم که ما عقب موندیم کسی با من است کسی با ما هست؟ اختلاف در راهیست که باید پیمود؟ این حرف ها را دوستاران دلسوزان واقعی ایران میگویند

با درد میگویند با دریغ میگویند که با خود بیگانه شده ایم تاریخ گذشته را از یاد برده ایم از افرهخارات نیاکان بی خبریم کار به جای رسیده که خودمان از آگاهی میگوییم در صورتی که یک صفحه نخوانده ایم و نه میدونیم مبالغه بس است مبالغ بس است اگر ادبیات به فساد میرود باید از گذشته کمک گرفت

اگر چراغ ملتی می میرد از شوله های چراغ تاریخ قدیم باید نوری افروخت شما فکر می کنید همین تاریخ برای ضمانت و بقای این قوم این ملت کافی است عجب مگر شما تاریخ را نمی خانید ملت بودن که تاریخ درخشان و که داشتند اما امروز نه نشانی از آنهاست و نه تمدنی مگر کلده و آشور در عهد خود بزرگ و درخشان نبودند،

سرزمینشان در آفرو رفت و با خاک اکسان شد. خاک همون خاک است که آفتاب بر آن میتاببد اما آن قوم نیست و زبان و فرهنگ دیگر دارند. مردمان کلیه و آشور در زمان خودشان پیروزی ها سر بلندی های بسیاری داشتند. نیروی حیات را از دست دادن و قوم دیگری بر آنها چیره شد. آنها حق داشتند بمانند و زنده هم بمانند اگر.

بیشتر میکوشیدند اگر بیشتر میکوشیدند از تاریخ مرس عبرت بگیریم مصر قدیم اثری از آن نیست ملتی میماند ملتی میماند توجه کنید ملتی میماند که شرایط مناسب با محیط داشته باشد و خواهد ماند و میماند اگر ایران تقنهای دراز در مقابل سیل بنیانکن پایداری کرد و بر جای ماند میدانید چه علت داشت

هنوز نیروی حیاتی ملت باقی بود، هنوز میکوشیدند. امروز در هر گوشه از آسیا بلکه جهان میتوان یادگاری از فرهنگ ایران یافت. این نفوز معنوی با زور سرنیزه به وجود نیامده است. در روزگاری که از هندوچین تا غستان ثنیه از فرهنگ ایران بهره میبرند، ایران با همه کشورگوشایی ها بیگانه بود.

آیا وسیلهی برای تبلیغ فرهنگ ملی بود؟ ایران عالی نمونه فرهنگ را داشت درسته است که علم پیشرفت کرده است اما این حقیقت دردناک است که آن افتخارات ما به کجا رفت و به کجا می رود شاید شما هم مثل من از خودتان می چه باید کرد، چه باید کرد و چه باید کرد فقط باید بکوشیم، باید بکوشیم، باید کوشش کنیم فرهنگی زنده مناسب،

با احتیاجات زمان با حفظ بهترین ها از نیاکان به وجود بیاوریم این کار دشوار است اما آنکه می‌خواهد زنده بماند باید با دشواری ها بسازد باید امید داشت ناامید مردگانند ملتی که زنده است بر گذشته خردوابستگی دارد زیرا زندگی امر ناگهانی نیست اگر زنده باشیم تاریخ ما زنده است افتخارات ما پا برجاست

اینجا لازمه زندگی و بقای ما می باشد اما زندگی توجه به گذشته نیست حرکت به سوی آینده کسانی که نیروی زندگی را از دست دادند از تازه و نو می ترسند زیرا تازه ناشناس است و طب آدمی از ناشناس حراس دارد این هم دلیری می خواهد و این هم دلیری می خواهد دلیری نشانی زندگی است

باره هر تا شب نباشد روز نیست تا سیاهی نباشد سپیدی نیست تا خائن نباشد دوستدار وطن نیست هنوز همه چیز سر جایش است روزی که این ملت من و تو من و تو ای ایرانی به دموکراسی برسیم جهان دوباره لیاقت فرزندان ایران را به تحسین و تعجب خواهد نگریست دل من گواهی می‌دهد آن روز دور نیست

دل من گواهی می دهد آن روز دور نیست به, آم... به امید آن روز هموطنان کوشش کنید کوشش کنید کوشش تنها راه رسیدن به پایداری و جاودانی ملت ما کوشش است و کوشش و کوشش

وفترونچه مهتاب تو بهشت شالی زارام به با سرود شالی کاران شالی زار عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب

Oh

گفت قنچه منچه مهتاب تو بهشت شالی زارم سومبرمی رخصت بناز بو سرور سبز و بیدار عروس پوشیده اتره خا اتره ما

مح شلی می رود تا سر بیاید شالیزار در انتزار تا چه در بیاید شلیزار سبز وبیدا پیرر عروس پوشیده اطر خاک اطر مح اطر تازهه.

ایران سرزمین شگفتاوری است تاریخ و از نظر رنگارنگی و گوناگونی کم نزیر است بزرگترین مردان و پسترین مردان در این آب و خاک پرورده شدند حوادثی که بر سر سرو آمده بدامگونه است که در خونه کشور برگوزیده بزرگی است

فتح درخشان داشته شکرست های شرماور مسیبت های بسیار کام های بسیار گویی روزگار همه بلاها بازیه های خود را بر ایران آزموده است او را بارها بر پرتگاه برده و باز از افتادن بازش داشته ایران شاید سخت جان کشور دنیاست است بوده که با نیم زندگی کرده

اما از نفس نیافتاده، چون بیمارانی که میخواهند نزدیکان خود را بیازمایند درست در همون لحظه که همه از اون ناامید هستند چشم گشوده و زندگی را از سر گرفته است با وجود ترکامی ها ما حق داریم به کشور خود بنازیم کمر ما زیر بار تاریخ خم شده است و همین تاریخ به ما نیرو میدهد

ما را باز می دارد که از پای در نیفتیم. کسانی که در زندگی خیش رنج نکشیدند سزاوار سعادت نیستند. تراژدی همواره در شن سرنوشته های بزرگ بوده است و ملت ها نیست چنینند. آنچه ملتی را آب و پخده و شایسته اعترام می کند تنها فیروزی ها گردم فرازی های آن نیست. مصیبت ها و نامرادی ها نیست هست.

از حاصل دوران های خوش و نخوش زندگی است که ملتی شکیبایی فرزانیگی می آموزند. قوم ایرانی در سراسر تاریخ خود از اندیشیدن و چار جستن باز نیستاده دلیل زنده بودن ملتی نیست همین است. آن همه مردان غیرتمند، آن همه گویندگان، نویسندگان، حکیم و عارف، آن همه سرهای نارام پرورده این آب و خاکند،

و به تولای نام اینان است که ما به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم چه سعادتی از این بزرگتر که کسی بتواند فردوسی و خیام و حافظ و مولوی را به زبان خود آنان بخواند برای اینکه بتوان آنها را تا مغز و استخوان احساس کرد همان بس نیست که فارسی بیاموزد نواید بگذاریم که مشکلات گذرنده و نهیب های زمانه گذشته ما را از یادمان ببرد

ما امروز پیش از هر زمان دیگر نیازمند آنیم که از شکوه و غنای تاریخی خود الهام بگیریم زیرا در آستانه تحولی هستیم خوشبختانه ضربه هایی که بر سر ایران فرود آمده هرگز به آن گونه نبوده که او را از گذشته خود جدا سازد حمله تازیان شاهنشاهی ساسانی همه, را، همه چیز را فروری کاخا خراب شد

ها برباد رفت اما نتوانستند روح ایرانی را تصویر کنند ایران طی قرنها به دست فرمانروایان غیر ایرانی حکم گذاری شده است ولی چه باک عرب و ترک و غضو، مغول و تاتار چون مهمانی بودند که چند سباهی بر سفره ایران نشستند و آمدند و رفتند بیاکه بتوانند ایران را با خود ببرند.

در همون زمانایی که پیکر ایران لخت لخت شده بود و هر پاره آن در سلطه حاکم خودی یا ای بود روح او پهناور تعزی نپذیر مانده بود ایرانی واقعی تا به آنجا گسترده میشد که تمدن و فرهنگ و زبان او زیر نگین, زیر نگین داشت ایران همواره استوارتر و ریشه دارتر از آن بوده که به نجاد یا مسلط سلطان یا خانی یا فاته ای اعتراع کند

قلم روی ایران قلم روی فرهنگی بوده و تمدن و مرس های او را مشخص دانسته هست. تاریخ جاودانیگی هر ملتی تاریخ تمدن و فکر روست. ما بقی واقعی گذرنده هستند که عرضش سنجیدن ندارند. مگر کمی کمکی که به بهپوت زندگی و تعمیل مردم زمان خود کرده باشند تاریخ واقعی تاریخ سیر بشریت به سوی ارتقاست.

از این رو ما چون به گشت خود نگاه می چندان بدان کاری نداریم که در فلانت چی کسی بر ایران فرمان رانده یا مرزبانان این سرزمین در کدوم خط پاسداری می کردند سهر معنوی قوم ایرانی جنبش ها کوشش و برای ما مهم است ما دوران احتلاع, احتلاع ایران را دورانی می که تمدن فرهنگ به شیفتگی گراییده

و دوران این حراافو را دورانی که تمدن و فرهنگ دستخوش رکود و فساد گردیده. فلممثل اصر سامانی به مراتب درخشان تر است دوران نادشهای افشار است. زیرا خاندان صفوی برای ایران زیان خواندان صفوی برای ایران کمتر از سود آن نیست.

ازار نظرهای پراکنده گاهی قراز آلود و احیانا نادرست درباره تاریخ ایران مردم کشور ما را در تقویم ارزش وقایه تاریخی گمراه کرده است. در گفتگو با بسیاری از روشنفکران کلونی غالباً با یکی از این دو عقیده متناقص به نسبت به گذشته ایران روبرو می شویم.

گروه همه فضایلق و میرانی را در همه دونان ها انکار می کنند. شاید تجربه های تلخی که در عمر خود اندختند و آن را بر آنها بر این عقیده یاری کرده است. گروه دیگر با تعصوب و مبالغه به ثوابق تاریخی مینازند که چندان شایسته نازیدنش هم نیست. این امر که خشیار بر دریا تازیانه زد یا شاپور کتف عرب را سوراخ کرد یا نادر تا قلب هندوستان پیشرفت

برای کودک ستا... کودکستان دبستانی روایتی دلشین می تواند باشد اما به خودی خود برای قوم ایرانی مایه مباهاتی نیست اگر سرها و ناسره های تاریخ را از هم جدا کنیم اگر سره ها و ناسره های تاریخ را از هم جدا کنیم این عقیده ناروا در میان عده شیو نمیافت که برای هماهنگی با دنیای جدید باید از گذشته خود ببریم

لالایی افتخارات پیشین که ما را در خواب نگه داشته از گوش در کنیم اگر منظور از افتخار پیشینیان کشورگشایی ها یا شغاوت های بعضی از امیران ایران است پس باید گفت که هیچ تاریخ در جهان درخشان تر از تاریخ قوم مغلی است اما اگر مخصوص سرمایه های معنوی و فرهنگ ماست چون آنها را از دست بدهیم

دگر برای ما چه خواهد موند آنگاه ما خواهیم موند سرزمینی نااباد و دست هایی که تنها هنر آنها بیل زدن است اگر گمان ببریم کوهنگی کشور ایران ما نگردد که ما نو شویم ما نیازمند دنیای امروز هستیم و باید با آن هماهنگ هنگ باشیم اشتباه است اگر فکر کنیم که با گذشته خود باید ببریم

ما چه در اختباس از تمدن و علم و فرهنگ جدید بیشتر بکشیم بیشتر احتیاج خواهیم داز از گذشته خود مدد و نیرو بگیریم برای اینکه که پای ما نلرزد برای اینکه خود را نبازیم سرگردان نشویم برای این در دنیا ماشینی و یه نواخت و سر احساس قربت و دلزدیگی و ملال نکنیم از سوی دیگر زخایر فکری و منوی کشور ما

کارنامه چندین هزار ساله پدران ما شهر مردانگی و کوشش ها خطاها شکرست ها توفیق های آنان ما را برمی انگیزد که ایران را بدانگونه که شایسته نام اوز با مختزای دنیا امروز بسازیم ایران سزاوار آن است که خوشبخت سزاوار باشد برای اینکه که خوشبخت و سزاوار باشد باید هم به خود وفادار بماند و هم به استعلاع علم بر جهان کنونی ایمان بیاورد.

و در آموختن آن چنه می داند قفلت نورزد ما فرزندان کنون ایران این افتخار را یافته ایم که در ایک از دورانهای رستاخیز این کشور زندگی کنیم این افتخار مسئولیتی بر شانه ما می نهد نخستین نشانه توجه این مسئولیت آن است که امیدوار باشیم، صبور باشیم و این گفته تول ستوی را از یاد نبریم نیروی برتر از نیروی این دو جنگ نیست

یکی زمان و دیگری شکیبایی توی ایرانی ایرانت پایدار بماند

شکیل تخنه در تو بود تو در تو بود تو

Velapp har du det tørt Royom man ni sjøen Velapp man

اشکه باران می شدم. در تو با تو در تو و با تو بهاران می شدم تنگه دل تنگه از ننگ سکوت در تو می تنین رد و دوفان می شدم در تو می پیچم تنین رد و دوفان می شدم آسی و تاقید از آگوش خزم

هفت بلن خالده تن روی اممان می شویم هفت روی اممان می

صد ساله پرز مصوم و پاکمگین با گم های سنگین بر تکه تکه

شرکت نوویرک برای کمک و راهنمایی ها برای یافتن شغلی آزاد و مستقل البته با مشاوره رایگان توسط خانم تینا بغدادی شرکت نوویرک به مدیریت خانم تینا بغدادی در رابطه با

کمک به خانم ها برای یافتن شغل آزاد و مستقل کنفرانسی را در تاریخ یک 17 هم سپتامر 2006 از ساعت 12 تا 16 در محل باغا باغان سالون گلقوب واقع در خیابان گودگونسوی شماره 80 برگزار می کند.

ورودی فقط برای خانم‌هاست و رایگان است. در این کنفرانس علاوه بر حضور شردار آوهوس و کارشناسای امور شغلی، برنامه متنوع از جمله گروه رقص دیبا و همچنین از مهمانان به صرف ناهار پذیرایی خواهد شد. شماره تلفن جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر

با شماره چهل سی سد و پنجا و و چهلا یک. تکرار می کنم چهل سی و پنجا و دو هفت خانم تینا بغدادی می توانید تماس بگیرید

lanam ro besno ke halam be to ni ets wachti no nach hasti ke tadramo be to ni manare zo mikardam ke ham zabo ne besham o dige ino dashtam ke saye gulo

you

سلامی دوباره حضور شنوندگان گرامی رادیو البارز توجه شما را به خبرهایی از ایران جلب می کنم یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته است که تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد شکاف بین قدرت های بزرگ جهانی ناکام مانده و خواستار وضع سریع تریم های بین المللی علیه ایران شده است

روز جمعه هشتمه سبتاند، معاون وزاحت امور خارج آمریکا در امور سیاسی در احضار نظری پیرامون اجلاس نمایندگان گروه پنج به علاویه که روز پنشنبه گفت که این کشورها در زمینه توافق پیرامون وضع تنبیه هایی که علیه ایران باید انجام بشه به پیشرفتهایی دست یافتند.

و ایالات متحده امریکا انتظار دارد شورای امنیت در خلای چند هفته آینده جمهوری اسلامی ایران را مشمول تحریم بین المللی قرار داد معاون وزارت امور خارج آمریکا گفت دولت ایران در ابتدا در پی ایجاد شکاف بین ایالات متحده آمریکا و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان بود و پس از شکست در این امر،

در سدد تفرق افغانی بین کشورهای غربی و چین و روسیه برآمد. به گفته این مقام آمریکایی، در ادامه اجلاس روز پنج شنبه در برلین، نمایندگان گروه 5 و علاوه یک به مذاکرات تلفنی خود از روز دوشنبه ادامه خواهند داد. هدف از این مذاکرات دستیابی به توافق در مورد نحوه برخورد با ایران به دلیل خودداری این کشور

از عمل به خواست شورای امنیت برای تعلیق غنیز سازی اورانیوم است. قهدنامه 1696 شورای امنیت که ماه پیش به تصریب رسید از ایران خواسته شده است تا فعالیت غنیز سازی اورانیوم را از روز 31 آگست متوقف کند. اما جمهوری اسلامی ایران این قهدنامه را غیرقانونی خواند و آن را رد کرده است.

پیش از آن نیز پنج عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه همراه با آلمان محسوم به گروه پنج بلاوی یک مجموعه پیشنادائی را برای حل بحران حسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بودند که شامل امتیازاتی به این کشور در برابر تعلیق غنیز سازی اورانیان بوده است.

نیرهای ارتش جمهوری اسلامی ایران هفت نفر از نیرهای اراقی را هنگام ورود به خاک کشور در استان ایلام دستگیر کردند. این گزارش را معاونت فرنگی و تبلیغاتی دفاعی ستاد کل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی در شانگاه پنشنبه در اختیار خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی قرار داد بر اساس این گزارش هفت عراقی که از داخل خاک اراق

وارد خاک ایران شده بودن، توسط نیرای ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مهیمک دستگیر شدند. این گزارش می افزاید علت عبور اونها از مرز ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است. بنابرای گزارش کمیته دانشوی گزارشگران حقوق بشر، امیر ساران، فعال سیاسی و دبیر کل جپه اتحاد ملی،

که چندی پیش به مرخصی آمده بود ساعتی پیش از سوی معمولان اطلاع در منزلش در شهریار شد. به گفته خانواده ساران معمولین در حالی که حکم بازداشته امیر ساران را همراه داشتند اعلام کردند که از طرف داستان حکم دارند تا ویرا تعویل زندان دن امیر ساران پیش از این در مصاحبه با راژیو فردا اعلام کرده بود به دلیل اینکه خود را گناهکار

و مجرم نمی‌داند پس از اتمام مرخصی به زندان باز نخواهد گشت. گفته نيست مرخصی وی روز 13 شهریور ما به اتمام رسیده بود. بنا به کمیته دفاع از آزادی احمد باطبی بیانی صادر شده است که طبق این بیانیه بنا به گفتای همسر احمد باطبی روز دوشنبه

با وی تماس حاصل کرده است همسر وی میگوید که صدای احمد باطبی بسیار ضعیف بوده است وی در ادامه میگوید که پاسپورت احمد در جواب این سالش که وی را چه موقع به بند عمومی منتقل خواهند کرد گفته است تو به دلیل مصاحبه های همسرت در بند انفرادی خواهی ماند وی گفت احمد باطبی از نظر روحی دو مشکلاتی جدی شده است

چنانچه دیگر به مشکلات جسمی خود هیچ اهمیتی نمیدهد احمد باطبی را در شرایطی قرار دادن که وی گفته است من دیگر نمیتوانم مثل بقیه مردم زندگی کنم و زندگی عادی داشته باشم و باید نه سال دیگر را در زندان بگذارم سخنگوی وزارت امور خارج آمریکا در بیانی متوادی خود گفت سرکوبی آزادی بیان

توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران نشانگر توخالی بودن ادعای وجود فضای باز مناظره و گفتگوست. ایالات متحده آمریکا نیگرانی عمیقی را در مورد بازداشت تعدادی از دانشجویان فعال ایرانی از جمله رهبر معروف دانشجویان احمد باطیبی که دوباره بازداشت شده است را دارد.

مرگ دوباره یک زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین سازمان دیدبان حقوق بشر مرگ دوباره یک زندانی سیاسی در زندان اوین را محکوم کرد تبقی بیانی سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است مرگ دو زندانی سیاسی به خاطر ابراز عقاید سیاسی در زندان به سر می در طی 5 هفته نشان می دهد

که سلامت و امنیت جانی زندانیان سیاسی ایرانی در معرض خطر جدی است. مرگ ولیولا فیض معدوی که توسط دولت جمهوری اسلامی اعلام شد در ادامه جان باختن اکبر محمدی در 3 جولای رخ داده است. هر دوی اونا در اعتراض به شرایط نامساعد زندان و نوعه بازداشتشان احتساب قضا کرده بودند.

سازمان دیدوان حق بشر اعلامی دارد دولت جمهوری اسلامی ایران باید به فوریت یک کمیته مستقل از وکلا و پزشکان ایرانی را تعیین کند تا به بررسی و تحقیق پیرامون مرکای اخیر زندانیان سیاسی در شرایط مشکوک و محبه بپردازد. این کمیته همچنین

ضرورت دارد تا شرایط دیگر زندانیانی که به خاطر بیان دیدگاه هایشان زندانی شدند را نیز مورد عرضیابی قرار دهد. معاون مسئول بخش خاورمیانه دیده با نوغ بشر گفت مقامات زندان های ایران در موارد بسیاری اطلاعات غلط و گمراک کننده در خصوص سرنوشت زندانیان سیاسی ارائه دادند. بعد از دو مرگ در عرض چند هفته

باید برای آن چه در داخل زندان های ایران رخ داده هست پاسخگو باشند. اکبر محمدی فعال دانشجوی 38 ساله در سیوم جولای جان باخت خانواده وی که جسدش را در هنگام خاک سپاری مشاهده کرده بودند به سازمان دیده با بشر گفتند آنها علائم زیادی بر روی بدن وی دیدن که با شکنجه مشابهت داشت.

ماموران دولتی والدین محمدی را مجبور کردند که جنازه او را به سرعت دفن کنند و تقاضای آنها برای کالب کالبدشکافی مستقل را نادیده گرفتند. جمال کریمی راد وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در 3 جولای احضار داشت. علت مرگ اکبر محمدی معلوم نیست و نتایج کالبدشکافی در ماه آینده اعلام خواهد شد.

در حالی که بیش از یک ماه از این رویداد تلخ گذشته است، هنوز مسئولین جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه ارائه ندادن. خبرگزاری کاری ایران در شیشم سپتامبر خبر در گذشت مهدوی را منتشر ساخت و از قول مسئولین حکومت اسلامی اعلام کرد که او دست به خودکشی زده است.

قیز معدوی سی هیست ساله سازمان مجایدین خلق یک اپ گروه اپوزیسیون برانداز ایرانی است. او روز شنبه دوام سپتامبر پس از نه روز اتصاب قضا در بیمارستان شریعتی تهران بستری شده بود. سراب سریمانی مسئول زندان های استان تهران اصحار داشت معدوی در شمبه شب تلاش می است تا خودش را در زندان گوهردشت واقع, واقع در شهر کرج،

حلقا کند او اضافه کرد مامورین زندان معدوی را به بیمارستان شریعتی منتقل کردند او احتساب قضا معدوی را تکذیب کرد منابع نزدیک به خانواده معدوی به سازمان دیدبان حقوق بشر گفتند زندانیانی که با مهدوین در سالن مشترکی در زندان به سر می‌بردند اطلاع دادند که وضعیت جسمی معدوی پس از نه روز احتساب قضا به شدت به وخامت گرایید

به گفته آنها محصولین زندان نسبت به وخامت حال مهدوی بی توجه بودن تا زمانی که حالوی بحرانی شد. او بیهوش شد و سرانجام مسئولین زندان او را به بیمارستان اضام کردن. نیرای امنیتی ایران مهدوی را در سال 2001 میلادی بازاش کردند و او را به اقدام مسلانه بر علیه نظام جمهوری اسلامی متهم کردند.

معدوی در شرایطی که از حق دسترسی به وکیل محروم بوده از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده بود خبرگزاری کار ایران در 6 ماه گزارش داد که با موافقت آیت الله رئیس قوه قضاییه حکم وی از اعدام به حبس عبد تغییر یافت محمد شریف وکیل مهدوی به سازمان دیدبان حقوق بشر گفت معدوی از طریق تماس تلفنی به وی

اطلاع دادند که اعتصاب قضای قضایش را آغاز کردند تا به تقاضای و مبنی بر ملاقات با وکیر و کلایش در زندان پاسخ مثبت داده شود همچنین از زندان گاهردشت کرج منتقل شد جایی که به دای او تحت تعدید و خطر از سوی زندانیان با جرائم خطرناک و سنگین به سر میبرد

خانواده و وکیل مدوی پس از انتقال او به بیمارستان هیچگونه دسترسی به او نداشتند. سازمان دیدبان حقوق بشن همچنین مراتب نگرانی عمیق خود را از تداوام بازداشت موقت سید علی اکبر منسوی خوینی فعال حقوق بشری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اعلام میدارن او از روز دوازه مایجوهن تحت بازداشت خسرانه و غیرقانونی در سلول انفرادی در زندان ا

سر در حالی که وی هیچ گونه دسترسی به وکیل ندارد هنوز مقامات رسمی هیچ اتعامی علیه وی مطرد نکردن بنابرای کمیته گزارشگران شویی حقوق بشر مراسم چلومین روز در گذشت اکبر محمدی در روستای چنگ میان در میان حضور پیش پرشمار نیرای امنیتی برگزار شد.

وجود هزار نفر از دوستان و بستگان اکبر محمدی با حضور بر مزار اکبر محمدی و گواذاردن تاش‌های گل یاد او را گرامی داشتند. حاضرین در این مراسم همچنین با سردادان سرود ای ایران و یار دبستانی در مقابل دربین های نیرای امنیتی همبستگی خود را با خانواده محمدی ابراز داشتند.

گفتنیست که نیرهای امنیتی با حضور چشم در مسیرهای منتعی به مزار اکبر محمدی با متوقف کردن ماشین افراد شرکت کننده آنها را مورد باجوی قرار داد و کارت شناسایی افراد را ضبط می کردن. همچنین خبرهای دیگر حاکی از این است که بسیاری از افراد که قصد شرکت در این مراسم را داشتند،

در را توسط نیرای اطلاعات و پلیس متوقف شده و به سوی تهران بازگردانده شدند گفته می شود تعدادی از این افراد که در روستای سرخ گلاب توسط نیرای امنیتی متوقف شده بودند با معمورین به درگیری لفظی پرداختند و پس از حدود یک ساعت مجوز حضور بر مزار اکبر محمدی را به دست آوردند

مهندس کرماني عضو شورای عالی رهبری حزب پانا ایرانی نیست از جمله افراد واسطه شده در جریانی مراسم بود که پس از چند ساعت واجویی در اطلاعات آزاد گشته است لازم می یادآوری است که اکبر محمدی متهم ردیف دوم پرونده کوی دانشگاه ابتدا از روی دادگاه به اعدام و سپس به 15 سال زندان محکوم شد

وی در تاریخ هشتم مرداد ما در پی نه روز اتصاب قضا در زندان ایوین درگذشت. گذشت. انجام از مطبوعات با سودر بیانی ضمن بیان نگرانی های فضایندهی خود در مورد افسایش فشارها و معدودیت ها علیه مطبوعات و رسانه های مستقل گروهی خواستار ترت پیگرد قانونی قرار گرفتن نقص کنندگان

آشکار قوانی شد میپردازم به گزارش های برنامه امروز ارادی محمد خاتمی ریش جمهور پیشین جمهوری اسلامی همکنون در آمریکا به سر میبرد و گروه های حقوق بشر و ایرانیان مقیم آمریکا اعتراضات مختلفی را علیه حضور محمد خاتمی در آمریکا داشتند

توجه شما را به گزارشی از راژیو فردا در رابطه با مصاحبه مطبعاتی محمد خاتمی در آمریکا از راژیو فردا جرم کنم محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی که همکنون در آمریکا به سر می برد شب گذشته در کنفرانسی خبری در پایتخت آمریکا شرکت کرد و به هفت پرسش خبرنگاران پاسخ گفت پرسش نخص را

گزارشکر رادیو فردا با او در میان گذاشت. محتاب فرید در واشنگتان. میخواستم از حضورتون بپرسم که شما آرشیتکت گفتگو با تمدان ها هستید و در هیش سال ریاست جمهوریتون در سراسر دنیا راجع به این مسئله صحبت کردین. بعضی ها بر این باورن که این مسئله گفتگو با تمدان ها در خود ایران هیچ فرق جا نیفتاد. چرا؟ ایران میدونید که مرکز تقاطع فرهن

تمدن اینکه در ایران شکل گرفت در واقع در برگیرنده همهی جنبه های مثبت تمدن های مختلفی بود که پیش از آن وجود داشت ملت ایران ملت بزرگی است و ملت متمدن نیست و به همین دلیل هم می از این ملت منادی هفتگوی تمدن بود من نمیدانم منظور از اینکه گفتگوی تمدن ها در ایران جاای افتاده ینی چی متاسفانه در دنیا مشکل برای گفتگوی تمدن وجود داره

خبرنگار شبکی فاکس نیوز پرسید آقای خاتمی آیا شما فکر میکنید اصولاً یهودی ها با بقیه ادیان متفاوت هستند؟ آقای خاتمی در جواب گوه اما،, اما معتقدم که در میان مسلمان ها در میان مسیحی در میان یهودی ها کسانی هستند که خود را نجات برتر دین برتر و صاحب حقوق بالاتری میدونند آقای خاتمی هنگام ورود

با خانم رابین رایتس، خبرنگار واشنگتن پست، سلام و علیک گرمی کرد و بلا فاصله بعد از کنفرانس خبری به خانم رایتس گفت: شما چرا سوال نکردید؟ ادعی از آمریکایان ایرانی تبار هم در مقابل کلیسا دور هم جمع شدند تا اعتراض خود را برای ورود آقای خاتمی به ایالات متحده و سخنرانی در کلیسا ابراز کنند. کوروش صحتی، زندانی جنبش دانشجویی 18 تیر

در این تظاهرات شرکت داشت. زمانی که من در زندان بودم وزارت اطلاعات به شخص آقای خاتمی جمهور برای بر اونها نذارت داشت. مسئول مستقیم برخورد با من و سرکوب و شکنجه من بود. نسرین محمدی خواهر اکبر محمدی زندانی سیاسی که اخیراً در زندان اوین به طور مشکوک درگذشت به رادیو فردا گفت

و ب قسم به خون تمامی کسانی که جمهور اسلامی به نااح خونه این بی گنه ها نری نهحت تمامی جوون که ما نام امروز از اون را نداریم ازفهمی اونا دفاع خواهیم کرد سایه سعید سیرجی فعال سیاسی شدیددا به ورود آقای خاطمی اعتراض کرد اگه ویزای دیدار هستش ایشون به عنوان نمندی فرهنگی اومدن از تکلیف سعید سرجانی ها و آاددندیشانی که به قطع رسیدن چی میشه؟

و چطور در خاک کشوری که قانون حرف اول رو میزنه و کسی که تجاوز به حقوق انسانی کرده باید طبق قانون محاکمه بشه از ایشون دعوت میشه و در مقابل و برای مخالفین سنگری نیست برای ابراز عقیده شون و صداش ماهیار رسایی یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت خوشحال است که میتواند سخنانی آقای خاتمی را

در واشنگتن ببيند. خیلی خیلی خوشحالم که میچ آقای خاتمی رو اینجا ببینم چون قبلا هم در طول هشت سال همیشه خیلی به شخصیتشون احترام میذاشتم و الانم خیلی خوشحالم که توی این جامعه ایشون اومده تو این فضایی که خیلی همه صحبت جنگ و ذعواسشون اومدن و درباره صلح و صفا صحبت میاس. آقای خاتمی همچنین سخنرانی خدا در کلیسای جامع واشنگتن ایراد کرد. محمد خاتمی هرچند که همگنون

دارای سمتی در جمهوری اسلامی نیست شخصترین چهریه حکومت جمهوری اسلامی ایران است که تا کنون به آمریکا سفر کرده است پس از گروگان گرفته شدن 52 دیپلومات آمریکایی در تهران از نزدیک به 27 سال پیش تا کنون واشنگتون رابط دیپلوماتیکش را با تهران قطع کرده است اما وزارت خارجی آمریکا حفاظت از جان محمد خاتمی

در سفر او به آمریکا را متعهد شده است آقای خاتمی در کنفرانس خبری روزه گذشتهش در واشنگتون قبانند 8 سال دوران ریاست جمهوریش کشید تا اندیشه گفتگوی محسوم به تمدنها را تبلیغ کند و همزمان به جهان اطمینان خاطر بدهد که جمهوری اسلامی در پیگ دستیامی به صلاح های هستهی نیست

اون چه که در زمان من بود و ادامه داره تلاش برای دستیابی به تکنولوژی سلحامیز از زیزم. آقای خاتمی درباره اختلافات میان واشنگتون و تهران گفت که این اختلافات را باید از راه گفتگو از میان برداشت. رئیس پیشین جمهوری اسلامی افزاود، بحرگیری از زبان خشونت در هر دو طرف به گفتگو نمی انجامد و مشکل را پیچیده

و خواهد کرد. همزمان آقای خاتمی یادآور شد که درباری دعوت جهان قرب از جمهوری اسلامی برای توقف روند قنیسازی اورانیوم در ایران میتوان به گفتگو نشست. اما توقف این روند نباید پیش شرط گفتگوهای هستهی با تهران باشد. آقای خاتمی در این زمینه توضیح داد گفتگو که آغاز شود

درماری توقف روند غنیسازی سازی اورانیوم درباره ماهیت چنین وقفه ای زمان و مدت این توقف نیز می توان با یکدیگر رایزنی آقای خاتمی در حالی توقف روند غنیسازی سازی اورانیوم را به عنوان پیش شرط گفتگوهای هسته تهران با جامعه بین المللی رد کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قد وامی در همین زمینی

به جمهوری اسلامی مهلت داده بود که تا نهم شهدی ورماه جاری روند غنیسازی اورانیوم در ایران را متوقف کند اکنون با سرامدن این مهلت اعضای شورای امنیت گرم گفتگو هستند تا بر سر واکنشی مشترک به سرپیچی جمهوری اسلامی از حکم آن شورا تصمیم بگیرند

همانطور که گفته شد حضور محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران در آمریکا مصادف شد با اعتراض مخالفت با ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین نهادهای حقوق بشری یکی از نهادهایی که مخالفت می‌کرد با حضور خاتمی در آمریکا بنیاد خوی است توجه شما را گزارشی در این زمینه از

رادیو فردا عجل میکنم محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنج شمبه هفته همه سپتام در کلیسای جامع شهر واشنگتون در رابطه با گفتگوی تمدن ها سخنرانی کند سخنرانی محمد خاتمی به دعوت مرکز عدالت و آشتی جهانی وابسته به کالج آموزشی کشیش ها انجام میگیرد در واکنش

سفر محمد خاطمی به ایالات متحد آمریکا شمار قابل توجهی از ایرانیان مخالف جمهلی اسلامی در آمریکا به این سفر و دعوت از آقای خاطمی اعتراض کردند از جمله بنیاد خوبیی که سازمان فرنگی و اوق بشری است. با ارسال نام به کشیش جان پیترسون رئیس مرکز عدالت و آاشتی جهانی به دعوت از آقای خمی اعتراض کرده و ویرا در بحث گفتگوی تمدن فردی،

فاقد صلاحیت دانسته است در گفتگو با سیاوش عبقری مسئول بنگاد خویی مریم احمدی درباره دلایل دلائل اتخاذ چنی موزهی پسیده است سیاوش عبقری از اهداف این مرکز ادالت جهانی که دارن این است که گسترش عدالت شفافیت و مسئولیت تذیری مقام های دولتی و ترسی و توانمندی زنان در سطح جهان هست

مرد به شان بکشیش پیترسون نامه نوشت و ما گفتیم که آقای خاتمی یک مقام زبده زن فرانسوی و مسئول فاجعه نابودی هزاران مردم بی‌گناه در آزادیخواه مردمان میهن در ایران هستند و در حقیقت این خلاص اهدافی است که این نهاد شما دنبال می‌کند گفتیم که این نامه در روز جمعه اول ماه سپتامبر نوشته شده که در ایران هم

اولگرد فاجعه ملی یعنی کشتار هزاران زندانیان سیاسی در طالبان سال 67 بود که این جان باختگان در طالبان سال 67 همه در گورهای دست جمعی بدون نام به خاک سپرده شدند به ایشان اطلاع دادیم حتی در دوران ریاست جمهوری خاتمی شکنجه و حذف فیزیکی کوشندگان سیاسی دانشجویان نویسندگان و روزنامه‌داران

در حقیقت در دوران آقای خاتمی افزایش یافته کانون زهرا کازمی را در زندان به قهر سوندن و بسیاری از دانشجویان در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دستگیر و زندانی و شیکنجه رو بسیار هم کشته شدند. در دوران آقای خاتمی نویسندگانی چون محمد مختری، محمد جواد پوینده و آقای سیر و بسیارانه دیگر گفته کشته شدن

آقای داریوش و فروهر خانمشون توسط معموران وزارت اطلاعات در خانه ایشون در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به قطر رسیدن زنان حتی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سنگسار شده و میشوند کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پنجاب و دو بار در طول فقط دوران سه سال جمهوری اسلامی که آقای

خااطمی ر جموررش بوده برای نقد حقوق بشر جمهور اسلامی رو محکوم کرده اینها همه در دوران ریاست آقای خااطمی اتفاق افتاده ما آقای پیرسون گفتیم که شما چگونه می که مدهی گسترش به توسعه عدالت باشید و شخصی چون ممد خاطمی با چونی صاب ای که

اوولیت چنین جننارات ضد و شرست را داشته است دعلت به سخروانی میکن. ما فکر میکنیم که عدالت در حیرت وقتی توسعه خواهد یافت و حمایت خواهد شد که آقای خاطمی و هم در نظام جمهوری اسلامی در یک دادگاه مستقل بین به این جننارات در سات پاسخگووی باشند و از اوننا بخوایم که پاسخ بگویم. گفتیم که،

شما که حامی توانمندی زنان در سطح جهان هستید آقای همکارانشون در نظام جمهوری اسلامی همگی در حقیقت زد بزن هستند چگونه می توانی بگویید که شما حامی توانمندی زنان هستید با این که وجود داره با آقای خاتمی دعوت کنید گفتم که مرکز شما حامی شفافیت و مسئولیت‌پذیری مقام‌های دولتی هستن ولی به استحضار شما میرسونیم که جمهوری اسلامی

تاستترین حاکمیات هاست در دنیا برای نمونه گفتیم که در سال 2002 آقای شهرام جزایری که یک تاجر 29 ساله بوده به شست نماینده مجلس اصلاح طلب رشوه داده به برادر رهبر و همچنین 700 دلار به خود این آقای خاتمی رشوه داده چگونه ما میتوانیم حامی شفافیت و مسئولیت پذیری باشیم و چنین شخصی رو دعوت کنیم به

سخنگویانی آقای خاتمی در دوره هشتم یازومی هیچ گونه گفتگویی و گفتمانی را با مردمان ایران نداشته آقای خاتمی و همکارانشون در این نظام جمهوری اسلامی یک نظام ضد فرهنگ و تمدن ایرانی هستند در دوران ریاست جمهوری ایشان ساختمان سد سیوان که نزدیک پاسارگاد ادامه پیدا کرده که مقبره کوروش و آن که در

فترگاه نشانی از پرهنگ و تمدن ایران باستانی ایران داره در حقیقت با سیلاب بس چگونهشون میتونه راجبه گفتگو و تمدن ها صحبت وقتی که خودی در حقیقت ذب تمدن ایرانی هستن تمام این ها است با اهداف مرکزی را که شما مدیریت میکنین این ها سیاوش ابقری مسئول بنیاد خوی در آتلانتا در گفتگو با مریم احمدی

طور که گفته شد سازمان دیدوان حقوق بشر در رابطه با مرگ دواره یک زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین بیانی را صادر کرد که به سم موضوعتون رسودم توجه شما را به گزارشی در این زمینه از راژی فردا جل میکنم دیدوان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانی در ولی الله فیض مهدوی در زندان گوهردشت کنج را محکم کرد

ولیالله فیض مهدویی که در اعتراض به محرومیت از حقوق و وضعیت بلا تکلیفی در زندان دست به اعتصاب قضا زده بود، روز چهار شنبه در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. مسئولان زندان گوهردشت علت انتقال این زندانی به بیمارستان را سکتی قلبی اعلام کرد، اما سهراب سلیمانی سرپرست زندان های تهران علت مرگ ولیالله فیض مهدویی را تلاش ویب خودکشی در همون زندان کرده است.

مسعود ملی کمپار راژیو فرده در این باره گفتگوی دارد با خادی قائمی از دیدبان حقوق بشر با هم می شنویم ولیالله فیض مهدوی زندانی سیاسی زندان گوهدشت که به اتحام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به اعدام و سپس با تخفیف حکم به حبس عبد محکوم شده بود روز چهارشنبه در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت

سازمان دیربان حقوق بشر روز پنجشنبه با صدور بیانیهی مرگ ولیالله فیض مهدوی را محکوم کرد و زن انتقاد شدید از شرایط ناگوار زندانهای ایران خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه و نیز چگونگی مرگ اکبر محمدی شد که اخیرن در پی اعتصاب قضا در زندان اوین درگذشت.

جای سوک مابنه بخش خواهر میانه و آفریقای شمالی سازمان دیدبانه حقوق بشر است. آهای سوک در گفتگو با رادیو فردا جمهوری اسلامی را مسئول مرگ این دو زندانی سیاسی خواند.

We were very concerned about this, uh, this, this death announced yesterday of uh, Mr. Valiollah Faiz Mahdavi who uh, is this, now the second uh, person to uh, die in Qom Darmore in the past week yani marge aghaye Valiollah Faiz Mahdavi besyad nigehvarin o dovomin chasi sist ke ye tanha sham hafteh akhir dar zaban Iran dar gozashti cha hafteh

oh ابر محمدی دانشجو فعال در ب آنچه بدرفتاری و شکنجه در زندان بوده جانداد. فز محدوی به دنبال اتتصاابق غذا در اعتراض به شرایط ناگووار زندان و محروومیت از دیدن وکیش درگذشت. این دوور نشان میداد ح این افاد را با اتام های در زندان نگاه میدارست و قطعا مسئول مرگیان هاست در هر دو مورد باید یک تحویق مستقل انجام شود.

پیشمران‌هاندت در نیاز به یک تحقیق مستقل. حسن نودی قایمی از دیدبان حقوق بشر در واکنش به مرگ ولی‌الله فیزی مکتوی در زندان گوهردشت کرج در گفتگو با رادیو تاکید کرد جمهوری اسلامی باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد. نیاز به پاسخگویی امروز بیش از زمان دیگری ضروری

و ایجاد این کومیته حقیقت یاد باید بسرعت انجام بگیره و ما نگران هستیم که تنین نواردی در زندانهای ایران ممکنه که ادامه پیدا بکنه بعضی گزارش ها از ایران و زندان گوهردشت ها کیست های زندان در تلاش برای صحه گزاردن بر ادعای خودکشی ولی الله فیض مهدوی در همام زندان گوهردشت

و انکار اعتصاب قضای این زندانی دیگر زندانیان و هموندی های ولیالله فیزه مهدوی را زیر تهدید و فشار گذاشتند حادیه قائمی در واکنش به این گزارش ها به راژیو فردا می گوید ما هم این اخبار را ولی نمیتونیم تایید کنیم و نه نتقدید کنیم ولی به یک نکته بعد اشاره کرده اون اینه که در اینکه آقای فیزه مهدوی در اعتصاب قضا به سر می برده هیچ شکل

به همین دلیل هست که باید یک کمیته حقیقتی ها تشکیل بشه تعدید که چرا سازمان زندان ها دلیل این افوت آقای فضو مهدوی رو خودکشی اعلان میکنه چرا دولت ایران در تیجه پزشک قانونی در زمینه مرگ آقای محمدی و آقای فضو مهدوی رو ارائم نمیده چرا اجازه نمیده که پزشکان مستقل در این زمینه تحقیق بکنند؟

چرا آقای اکبر محمدی بعد از مرگش بلا فاصله دفت میشه و خانوادش هیچ رجازه نداره که یک طبش که مستقل رو در این درستانی مرگ اون جاستش رو مورد براسی قرار بده در متیجه این ها سآل هایی هست که انباشته شده و باید داده میشه حاضرتان این تعاولات در باره مرگ ولی الله فیض مهدوی این است که

حاشیه برادر او در روز 5امبر در مراجعه به زندان گوهادشت و دادگاه انقلاب به منظور کسب اطلاع بیشتر در باره علت مرگ برادر و احتمالا تحویل گرفتن جسد ولی الله فیض مهدوی نوکاماند گزارش مسئولان ملک را نشان

بعدازا به آخرین گزارش خبری برنامه امروز در رابطه با چاپ کاریکاتور هایی در روزنامه یکی از روزنامه های دانمارک است. به گزارش خبرزاری آلمان از شهر کپنا گزارش داده بود روزنامه دانمارک اینفماسیون اقدام به انتشار کاریکاتور های هواکاس چاپ ایران کرد

این روزنامه که متعلق به جنای چپ لیبراله است در توجیه این اقدام متذکر شد که برپایی مسابقی کاریکاتور های هولاکاست در ایران در واکنش به انتشار کاریکاتور های پیانبر اسلام در دانمارک صورت می ایرند. انتشار این کاریکاتورها در شروع سال میلادی جاری موجب درگیریای خشونت آمیزی در جهان اسلام شد.

ایران نیز در واکنش به این مسئله اقدام به برپایی چنین مسابقهی در انکار هولاکاست یعنی کشتار ملیون ها یهودی به دست نازیان دوران جنگ جانیه دوام کرد. بنت، واعظ اعظم یهودیان در شهر کپنای در خصوص انتشار کاریکاتورهای های در دانمارک گفت اشکالی در انتشار آنها نمی بیند،

و عرضش خاستی برای اونها قائل نمی شود دکتر میدی مزفری استاد دانشگاه آهوس در رابط با این مسئله گفتگوی با رادیو فرانسی دارد که توجه شما رو به این گفتگو جلب می کند

دانمارکی اینفرمسیون شماری از کاریکاتورهای نمایشگاه هولوکست تهران را در شماره امروزش به شاب بسند. در خصوص چرایی برگزاری نمایشگاه تهران مدیران مسعود شجاعی تبا طبع تبایی گفته بود هدف از این نمایشگاه نشان دادن حدود آزادی بیان در اروپاست. در این بخش از چشمنداز از آقای مهتی مزفری استاد دانشگاه آروس دامارک میپرسم با اقدام امروز روزنامه تهران

چه پاسخی احتمالا دریافت کردند ؟ در واقع این نمایشگاه هوکست در تهران و در مرکز شهدای فلسطینی ها برگزار میشه. این واکنشی است به کارتون هایی که روزنامه دانمارکی در 3م سپتامبر سال گذشته روزنامه به اسم یولنس پست چاپ کرده بود دوده کاریکاتور از پیامبر اسلام که بعضی از این کاراتور ها رو برخی از مسلمانان خلاف.

اقاید خودشون دانستند و یک بیعدبی به شخص پیغمبر اسلام که در نتیجه پرچم دانمارک رو شوزندند فراورده های دانمارکی رو تحریم کردند و همچنین بعضی سفارت های دانمارکی رو در سوریه و کشورهای دیگر اسلامی با آتش کشیدند و این نمایشگاه در پی سخنان آقای احمدی نجاد رئی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و ایشون گفت که هالوکوست یک افثانه است و برای نشان دادن

موه اغماز و چشپوشی مردم اروپا و به خصوص دانمارکی ها ما هم نماشگاهی از کاریکاتورهای یا مسابقه از کاریکاتورهای مربوط به هولوکست انجام میدیم که از شستوی کشور جهان آمده که اتفاقا تعداد کمیش

راجع به هولوکست هسته به نوشته این روزنامه و مصاحبه که با آقای شجاعی تبا برگزارنده این نمایشگاه انجام داده حالا با چاپ این تصاویر چه تصویدی به گمان شما از ایران در ذهن خواننده دانمارکی تدایی می شود؟

سن مقاله نویس اینفورماسیون اتفاقا از خاها اینجا که البته همونطور که از معلوم است یهودی است و خواسته که نظرش رو به این کاریکاتور هولوکاست تهران بده اون هم گفته که اینها بسیار بی‌معنا و بی‌مزه است ولی برای من اشکالی نداره ما میتونیم این رو هم تحمل بکنیم و یکی از استدلالات این روزنامه این است که برگزاری این نمایشگاه هولوکاست که یک

توهینی میشه گفت به قربانیان یهودی رژیم نازی میشه ولی هیچکس نرفت که سفارت جمهوری اسلامی رو آتش بزنه یا پرچم جمهوری آتش بزنه یا فرآورده‌های ایرانی رو تحریم بکنه و این رو اینها پذیرفتند

و رئیس هیئت تدریمی روزنامه انفورمیشن که من با صحبت کردم ایشان هم گفت که ما فقط از نظر روزنامه‌نگاری این کارو می‌کنیم یک نمایشگاهی است در تهران برگزار شده ما یه گزارشگر در اونجا داریم و ما فقط به صرف اینکه یک مسئله عادی هست این رو منتشر می می‌کنیم و البته برای آزادی بیان که ما می‌تونیم این رو تحمل بکنیم حتی چند که با ایش میتونیم موافق نباشیم

از سوزیاتی شما سپسگذار اما اگه مزفری کنید اما در ادامه برنامه امروز رادیو الوارز قرار بود که دانشنامه ایرانیکا از راژیو فرانسه را به سلم و حضور شما عزیزان برسونم

برای هفته آینده به سامتون می رسونم امروز در استودیو رادیو البرز یکی از خنرمندان هموطن ما از کانادا به آهوز تشریف آوردن سرکار خانمه پروانه و محبت کردن به استودیو رادیو البرز اومدن ما ضمن سلام و صحب خیر حضور ایشان

افتضا از ایشون می‌خوام که یه سلام با شما عزیزان شنونده داشته باشه با سلام خدمت همه ایرانیان عزیز شهر آگوست امیدوارم که خوب خوش باشین و موفق چون موفقیت تمام ایرانیان آرزوی من است و من از ونکوور یه دو روزی اصلا اومدم و دوستان ازم خواستان که به رادیو

جایی وسیع خوشبخته است که در کنار شما باشم من به شما خوش آمد میگم به شهر آهوز در دانمارک امیدوارم در این مدتی اقامتی که دارین به شما خوش بگذره قبل از اینکه شعرتون رو محبت کنین بخونین خواستم از شما سآل کنم که چند وقت فعالیت هنری در کانادا داری؟ اصلش تقریبا شیش سال پیش استاد

دو تا نیتاجبخش از ایران به ونکوور تشریف آوردن معلم ویولون و آواز بودند که من باهاشون آواز تمرین کردم و ایشون خیلی بیشتر از من شوق داشتن و منو تشویق می‌کردن ولی خود من زیاد علاقه به خوانندگی نداشتم

تا اینکه ایشون قبل از اینکه به بیماری مبتلا شدن و قبل از اینکه به ایران تشریف ببرن یک سرودی بود که از من خواستن که این سرود رو براتشون زنده نگه داریم چون خیلی علاقه داشتن به این سرود و که قبلا فکر می‌کنم شما پخش کردین کشور ایران گل گلاب گفتن و ملوک زرابی هم اولین خواننده‌شون بودن

بعد از اون کلاونون وزیری خوندن البته من سعی کردم فقط سرود و گفته‌هاشو زنده نگهدارم خودم هم که هیچ وقت نمیتونم قاوره مقایسه کنم با هیچ کدوم از اینها البته از شما کشورهای ایران که این سی دی رو خوندید غیر از این سی دی در حاله تایه دارین شما دو تا شعر دیگه قراره که برای من بگن که

اسکندر حمله کرد مغل تاخت افغان فتنه کرد تازیان با تشکشاندن و بیگانگان عرصه تاخت و تاز قرار دادن ولی ایران همچنان ایران باقی ماند استوار و پایدار زیباس عظمت ایران را از زبان ایران در شعری توسط محروخ پورزینال بشنوید من ایرانم منان

آرام شیر بیشه های دور دستم منان آتش فشان سربدامانم منان گریند عبر بی غبار بی کرانم منان خورشید بی مرگ درخشانم منان توفان خاموشم که خون از حیبتم جوشد منان شعر بلند شاعر گمنام تاریخم

منان سی مرغ کوه سارم که زال از شیر من نوشد منان آتشگه پیوست سوزانم منان پردیس بی دوزخ منان گردونه مهرم منان گهواره رستم منان پیمانه حافظ منان فرهاد شیرینم منان فریاد خیامم منان پاکم

که از هر ننگ بی رنگم منان دریای بی پایاد پر موجم منان دویارزوی هر عبر مردم منان افسانه خزرم که دارم عمر جاویدان منان رازم که در ژرفای هر اندیش معوایم منان زرین زنجیرم به ایوان انو شروان منان عشقم

که در اماغ هر دل آشیان دارد اگر دزدیکم این جوید و اگر بیگان آشوبد منان خشمم که می توفم منان رادم که می گرم منان مرز ستم تای گوهرخیزم منان خاک عبیرامیز و مشک آسای بیتایم منان شهر امیدم سرزمین مهر تابانم منان

NAM DELENGESEM, MEN EIRANEM, MEN EIRANEM

با تشکر از سرکار خانم پروانه که زحمت کشیدن شعر قشنگ و زیبایی را برای شنواندگان راژیا البرز مطرح کردن خوش یاداوره میکنم که سرکار خانم پروانه میمان خانم حوری علیزاده هستند. خانم حوری علیزاده هم در استودیو راژیا البرز زحمت کشیدن قدم رنجه فرمودن تشریف آوردن به خانم حوری علیزاده هم سلام صبح خیر میگیم

سلام و صبح شما بخیر امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و سلامت باشین آقا مصطفی فاملی من علی دوسته علی زاده فاملی شوهرمه <تصفيق> <تصفيق> <متحد> <خير> <متحد> <متحد> <خير> خیره منم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و پهوانه دوست من که از کاناده تشریف آوردن آوندیم اینجا که بسته به این ای که داشتن برای شنوندگان راژی الورز بخونن و

امیدارم که خوششون اومده باشه من که خیلی لذب میبرم از شیخ خواندن پروانه خانم علی دوستی شما میدارم نیزبان خوبی برای سرکار خانم پروانه باشید در شهر آهوست من سعی خودم رو خواهم کرد که به هر حال تا اونجایی که بینتونم ادستم بر بیاد خواهیش میخواستند کنم و بهشون خوش بکسر من تشکر میکنم از شما که به استودیو را دیاروست هشیف آوردین و همچنین خانم پروانه

حربانه که در استودیو حضور داره. روز خوبی داشته باشید.

از مقاله ایران را از یاد نبریم، اکنون چند دهه میگذرد، این عنوان گویای محتوی خود است. زیرا دیده میشود که از ایران حرف در میان است، ولی اصل در میان نیست. این اصل منظورم پایه است که یک کشور باید به اعتقای آنها بر سر پا بیستد. اقتصاد جای خود را دارد، از آن که بگذاریم فرهنگ و ادالت و آزادی توازان چار رکنی هستند،

که بی حد درقل آنها یک کشور نمی تواند به حیات طبیعی خود ادامه دهد اما ایران در این مجموعه و بعضی نوشته های دیگرم که از آن حرف زیاد به میان آمده نباید مورد سوی تحبیل قرار گیرد به هیچ وقت معنایش بطن خواهی ابلهانی رومانتیک تأثبامیز یا تو خالی نیست

اگر بخواییم در یک کلمه ساده بگویم که منظور از آن چیست خواهم گفت شهر یادگار، خرابه ها، کوچ باخ ها، بنا ها، از ویران های شوش تا مسجد سپه سالار ولی از سوی دیگر یه عمق طولی در آن هست می رود به دورها آنجایی که بیابان لشگر سلم و تور در آن گم شد و این کوک زهاک در آن به بند کشیده گشت

و این هامون همون هامونی که ده ها امسال ابوالسعيد ابن خير اندیشه های رندانه خود را در زیر آسمان پر آن پروند پروراندند و چنان پیچ و خمی به آن دادند که تا لب مرد کا مرگ پیش بردن آری شهری یادگار ولی باورترین یادگار یعنی آن چشافی قرون گذشته و دست ما را میگیرد و به گردش روزگار میبرد

به مولوی، باغ سبز عشق و به گفته حافظ دشت مشوش. آنچه در این جهان پرناور این قطع خاک را که ایران نام دارد در نظر ما از جه های دیگر متمایز میکند همین دل بستگی این خط اتصال است. گذشته که از آن یاد کردیم وابسته و پیوسته به امروز است اگر در مرکز اندیشه ماست برای آن است که نوبت ما به این زمان محول شده است.

موضوع تنها جنبه آتفی ندارد در واقع نگری دوست داشتن ذات است زیرا همه چیز باز می گردد به این نوبت و به این محولت که جهنگاه به ما داده شده است. تا در این سرزمین به سر بریم می خواهیم که فرزندان ما در آن به سر ببرند بنابراین حق داریم نخستین دل مشغولی ما باشد آن باشد آنچرا که شایست زیست هست بخواهیم

از 28 مرداد به این این احساس بر من بوده است که قوام ایران در معرض گسیختن است.

زندگی مادی از برکت نفت خوشایش گرفته بود ولی هرچون به جانب زر و برق بیشتر می‌رفتیم فرهنگ که عامل توازن و بخشو تنظیم کننده است رو به اختلال داشت احساس تضرسن در همه چشمه ها خوانده میشد حتی در چشم کسانی که از وضع موجود برخوردار بودند و این بارسرینی نشانه جامی است که در خوش عدم تعادل شده است

در عالم فکر و ادب و نشر مطبوعات در زیر پوشش رونق و رکود و تنش دستگاه رسمی همون طرفندهای هم‌شیگی را تکرار می‌کرد که مرغ یک پا دارد جزینم نیست دروازه تمدن بزرگ را نشان میداد و در این حال آن تمدنی که زیر داشت در کارزار از دست رفتن بود یه خط تخریبی چاپنما به طرز خزنده‌ای در مطبوعات نشر و رخنه کرده بود که سر به آس

انارشیست فکری می زد. درست معلوم نبود چه می خواهد آنچه می خواست آن بود که آنچه هست نباشد و اگر چیزی دیگری جایش را می گرفت باس خواست که آن هم نباشد

گذشته فرهنگ و کار و علم و کوشش همه با چشم شک و نف نگریسته می شود. این خط تخریبه ادهی از جوانان ما را که تشنه شنیدنی چیزهای نمو بودن بود و آنان را در راه ابتداد و اختلالی که منجر به قبول اصالت و نادانی می شود سرگردان کرد. من گمام می کنم سردم مکتب هم از آنانی که شاعر رو نویسنده یا دانشمند رو برخوردار،

بودند لطمی بزرگی به اندیشه گروهی از جوانان ایران زدن آنان را فریب دادن بنجل های کم سواد و عقدهداری که خود را به عنوان مسئول روشنفکری پیش را با آنها فروختند چپ چیزی بود که دوره ما هر جناق رونق کار خود را در آن میجست زیرا سر بر عوام و فریبی و به خصوص داشت و ادهه که مخالف،

آن حکومت بودند، از اون حکومت هم بی نبودند و حکومت نیز میزوب مرغوب آنها بود. بنابراین ما از دو صوبات چپ بی اصل روبرو بودیم و این هم تخم آشفتگی و فقر و تفکر در درون, ج... درون جوانان ما را پاشید. تازه اگر روزی به خود آمده باشند با عمر از دست رفته خود چه خواهند کرد؟ آیا نخواهند آمد روزی که دست بر سر بگویم بگویند و چه عمری که از ما تلف شد؟

از فرهنگ کل دستداروردهای نجیبانه است که ملت ایران در طی قرون متمادی کسب کرده است و آروزوهای معقول و شریف که برای آینده با آن همراهی می کند در واقع می شود روش زندگی کردن در اجتماع با حفظ اخلاق نه آن است که اثر هر اندیشه ای از گذشته در دست ما مانده باشد ارزنده است و مطلوب است

در بسم هزاران کتاب تا در بعضی از آثار معروف بر جای مانده آن مواردی که سر بر خرافه و گمگشتگی میزند با جنبه های فیاض و مثبت روی بشری و نیاز های امروزی سازگاری ندارد باید به کنار نهاده شود و تومه نقدی دقیق و دلیرانه گردد فرهنگ را آن بازمانده های میدانیم که در زمانی میتواند زنده و پیش برنده باشد از روزی که خودم رو شناختم دست به قلم بردم،

میخواستم خواستم راهی به فرهنگ و مردم هم راهی برای آنها باشد چون سرنوشت این دو را وابسته می دیدم جدای نپذیر بریده ماندن ایرانی از فرهنگ خودی آثارشون در پی می داشت زیرا حس جهتیابی را در این دنیای آشفته از اون می گرفت اما مردمی که پشت کردن با آنها صاحب اصلی بودن کشور را به براهود انسانی تبدیل می کرد به دینگونی که زندگی در آن از هر گونه معنای توهی می ساخت.

این کوشش را همواره داشتم که روش و زندگی و اندیش و نوشته هایم را در وفاداری این دو فرهنگ و مردم بکار ببرم اما درم فرهنگ و مردم

حق را به فرهنگ دادم چون مردم میتوانند در دوره ای از زمان اشتباه کنند اما فرهنگ هرجس سه اصلی که همیشه بر تکیه داشتم فرهنگ آزادی و توازن بوده است فقدان آزادی و حفظ فرهنگ بود که روسیه را پس از 70 سال و شرق اروپا را بعد از 40 سال به تغییر جهت واداشت درست است که قضیه از اختصاص در برآورده بود ولی ضعف اقتصاد در این کشورها به نسبت لنگی فرهنگ بود زیرا روان احساس

تا روان احساس گشایش نکند، بازو به کار نمی روید. همین چند سال پیش بود چه کسی فکر می کرد که دیوار بلین مانند خمیر بریزد و در میدان سرخ مسکو موتی میتینگ آزادی داده شود. جمهوری های جنوبی شوروی از شعار ملی بزنند. اینا همه موجزه فرهنگ و آزادی است. اگر پیمانه ها پر شود، خانه خال لبریز گردد،

البت آزادی باید توری باشد که کارش به هر جور مرج نکشد یعنی مهار قانون بر گردنش باشد ولی بیم از هر جور مرج نمیتواند بهانه برای آزادی قرار آنچه در نزدیکی ما چه در شمال در جلوی می‌گذارد بر ایران تاثیر

خواهد داشت امیدوارم در جهت مثبت باشد به طور کلی ایران از قدیم ترین زمان مسئله همسایگی داشته است و از موقعیت جغرافی هاییش ناشی شده است از آشور و سپس روم در غرب بگیریم تا برسیم به اقوام نیمه وحشی شمال و شرق و ترک و مغول در دورانی که

همین مشکل ادامه یافته است. ترکیه و پانی استعمار انگلیس در هند روسیه هزار سپس شوروی که ط سالها از لازم مسکی برای ایران فشار وارد کرده بودند. مجموع این وار مقدار آشفتگی از نیرون و استعداد ایرانی در ط تاریخ به خود مشغول کرده است که امکانی گردی تا بخواهد دفعش کند. از زمان از زیان مالی و جانی بگذریم اینجا که جایش نیز در تارتم اخیر

موه روشن هم دیده شده است همه مهمتر افزایش آزادی دورب مهم از جهانت جمله جه جنوبی شورو روز در شهای قلم روی ایران قرار داشت و زبان فارسی دارم جا رواز و گالندگی داشته این امربر بر مسئولیت مراقبت ایران از لحات زبان و فرهنگ کشور مادر

مادر است می افساید انگارون خیلی پیش از پیش ما در خارج از مرز به ایران دوخته شده است این نمونه را به عنوان مثال آوردم تا بگویم مسائل اساسی بشر دیر و زود دارد اما سوخت سوز ندارد پس

بازگردیم به کشور خودمون توجه داشته باشیم که ما در دنیایی دیگر شده زندگی می کنیم و جوشش و پنهان و آشکار داریم میان ایران بیشتر از همیشه نیازمند آن است که ازیاد نرویم که ازیاد نبریم تا شنبه دیگر که دوباره در خدمتون باشم شما را به خدای ایران می سفارم

با تشکر از همه شما شنوندگان که تا این لحظه با ما همراه بودید و با تشکر از خانم پروانه که مهمان برنامه امروز ما هستند و همچنین سرکار خانم علی دوستی فرانتس باز خانمه علی زادی دوستی و همچنین تشکر میکنم از همکار نازنین ما خانمه فیروزه

برنامه فردا ما از ساعت 8 بامداد شروع میشه و تا یازده ادامه خواهد داشت شماره تلفن ما شهست سه آدرس الکترونیکی ما راژیوالبرز ات و سایت اینترنتی ما ست نقطه ایران اینفو یک کلمه است نقطه دی قبل از اینکه با همه شما عزیزان خداوزی کنم تا فردا ساعت هشت بامداد از خانم پروانه میخواییم که،

امیدوارم که دوست داشته باشین و در ازنم خیلی متشکرم که منو اینجا داشتین با خودتون و با همه دوستان خداحافظی میکنم. بعد این شعر رو می‌خونم امیدوارم باز در آینده اینجا باشم چون داره بهم خوش می‌گذره <تصفیح> <متحول> <تصفح> هم زمانی که شما شعر رو می‌خونین ترانه کشور ایران از صدای خود شما هم زیر شعر شما پخش میشه خیلی ممنون

ارغوان ارغوان شاخه همخون جدا من آسمان تو چه رنگی است امروز آفتابی هوا یا گرفته هنوز من در این گوشه از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست از بهاران خبرم نیست آن چه می‌بینم دیوار است آه این سخت چه

من چنان نزدیک است که چو پر می کشد از سین نفس نفسم را برمیگرداند. چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسیی زچراغی رنجور به سپرداز شب زلمان است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندان است. هرچه با من اینجاست؟

ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هردم از دید فرو می ریزد ارغوان این چه است که هر بار بهار با ازای دل ما می آید. که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است وین چنین برجگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید ارغوانم

پنجه خونین زمین دامن صوب بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این در ریقم میگذرن ارغبان خوش خون باندادن که کبوترها بر لب پنجره باز سهر قلقله می آغازن جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر به تماشاگه پرواز ببر

خیلی تشکر می‌کنم از شما امیدوارم بار دیگر در استودیو را در انتظار شما داشتیارین و گفتگویی داشته باشیم خواهش میکنم خیلی متشکرم از شما

Teksting av Nicolai Winther